هزار افسان برنامی از گروه جوان و فرهنگ به نام خالق افسانه و حقیقت آن خدای یگانه مهربان سلام آدمی افسانه و قصه رو دوست داره با قصه ها و افسانه ها زندگی میکنه و بعد از این هم با اونها زندگی خواهد کرد افسانهها ها و قصه ها جاذبه ای دارند که در همه های عمر آدمی از کودکی تا پیری آدمی رو به طرف خودش میکشونه و به دنیای رؤیاها میبره افسانه ای رو از مردم خوب استان فارس براتون نقل میکنم با نام افسانه ارسیه پدری یا افسانه پسر فقیر و دختر پادشاه برگرفته از کتاب قصه های مردم فارس با گردآوری ابوالقاسم فقیری در روزگاران قدیم مرد فقیری همراه با همسر و تنها پسرش زندگی میکرد از غذای روزگار مرد فقیر از دنیا رفت و همسر و پسرش رو تنها گذاشت. پسر بزرگ و بزرگتر شد تا اینکه روزی تصمیم گرفت به سفر دور و درازی بره و کسب و کاری پیدا کنه بنابراین به مادرش رو کرد و گفت مادر جان خدا بیاموز بابام قبل از اینکه از دنیا بره چیزی برای من ارث نذاشت؟ مادر فکری کرد و گفت چرا پسرم؟ یک کیسه برات گذاشت. بعد پا شد و رفت و کیسه رو آورد و به پسرش داد. پسر هم کیسه رو گرفت و از مادرش خداحافظی کرد و رفت. پسر همونطوری که میرفت با خودش گفت آه خیلی گرسنمه کاش تو این کیسه دو دینار پول بود تا اقلن با اون شکمم سیر میکردم. بعد دست توی کیسه کرد دید بله. دو دینار پول توی کیسه بود. پسر خوشحال شده گفت کاش که از خدا یه چیز دیگه خواسته بودم. و این بار آرزو کرد ده دینار پول توی کیسه باشه. دست توی کیسه کرد دید بله. ده دینار توی کیسه است و متوجه شد که هر وقت آرزو کنه و دست توی کیسه کنه پول دلخواهش رو به دست میاره. به این ترتیب پسر مال و منال زیادی به دست آورد و به نزد مادرش برگشت و جریان رو برای اون بازگو کرد. مدتی گذشت روزی پسر رو به مادرش کرد و گفت مادر جان حالا دیگه وقتش رسیده من به خاستگاری دختر پادشاه برم مادر با تعجب نگاهی به پسرش انداخت و گفت خاستگاری دختر پادشاه پسر جان ما باید پامون رو اندازه گلیممون دراز کنیم نه بیشتر؟ دختر پادشاه کجا و ما کجا اما پسر قبول نکرد که نکرد مادر که دید پسرش به هیچ سراتی مستقیم نیست کفش و کلاه کرد و به همراه پسرش به خواستگاری دختر پادشاه رفت پادشاه به محض ورود اونها به توندی پرسید چی می‌خواید کاری با من داشتین مادر با احترام جواب داد اعلیحضرت عالم به سلامت باد ما به خواستگاری دخترتون اومدیم پادشاه گرهی به عبروان پرپشت انداخت بعد نگاهی به پسر کرد و پرسید. خا بگو ببینم مال منال چی داری؟ پسر با احترام جواب داد. قبله آلم به سلامت باد. من همه چی دارم. هرچی شما بخوایید. پادشا پوسخندی زد و گفت که همه چی داری. هر چی من میخوام پسر بهتوندی گفت بله قربان هر چی شما بخواید؟ پادشاه فکری کرد. بعد رو به پسر کرد و گفت فردا مردم. فردا مردم شهر رو توی میدون شهر دعوت میکنیم من اونچه در خزانه دارم به مردم میدم. تو هم هرچه داری به مردم بده. اگه پول تو اضافه اومد من دخترم رو به عقد تو در میارم پسر جوون، با خوشحالی شرط پادشاه رو پذیرفت و به همراه مادرش از حضور پادشاه مرخص شده فردای اون روز تمام مردم شهر با کنجکاوی و هیجان توی میدون شهر جمع شدن از گوش و کنار هر کسی چیزی گفت یکی می گفت امکان نداره این جوون مال و منالش به اندازه خزانه پادشاه باشه دیگری میگفت نه شاید این جوون صاحب گنج های زیادی باشه بیشتر از خزانه پادشاه نمیدونیم خلاصه هر کسی چیزی می گفت و نظری میداد تا اینکه پادشاه از خزونش به مردم سکه هایی رو بخشید پسر جوان هم دست یک کیسش میکرد و سکه ها رو به مردم میداد این کار هر روز ادامه داشت تا روز هفتم که خزانه پادشاه خالی شد ولی سکه های پسر تمام شدنی نبود که نبود پادشاه و مردم شهر از این همه سکه به حیرت افتادند پادشاه با خودش گفت حتما زیر این کاسه نیمکاسهی است و فورا به سراغ دخترش رفت و گفت دختر جان حالا دیگه نوبت توی که راز این کار رو دریابی دختر هم به پدرش قول داد هر جوری شده سر از کار خاستگارش در بیاره الغصه دختر به سراغ مادر خاستگارش رفت و اونقدر گفت و پرسید تا بالاخره مادر ماجرای کیسه رو برای دختر بازگو کرد دختر گفت امکان نداره یه کیسه ای وجود داشته باشه و مادر برای اینکه ثابت کنه همچی ای وجود داره رفت و کیسه رو آورد و نشون دختر پادشاه داد دخترم با تعجب گفت آه، باور کردنی نیست من باید خودم این کیسه رو امتحان کنم و مادر ساده دل کیسه رو به دست دختر پادشاه داد دختر هم اونو امتحان کرد و وقتی مطمئن شد که همه چیز حقیقت داره یهو کیسه رو برداشت و پا به فرار گذاشت و نزد پادشاه برگشت ساعتی بعد پسر از راه رسید و مادر تمام ماجرا رو برای پسر بازگو کرد پسر هرچند از این دلی مادرش ناراحت و عصبانی بود اما به روی خودش نیاورد و گفت اشکالی نداره مادر جان خدا بزرگه به بعد به فکر چاره افتاد مدتی گذشت پسر دوباره رو کرد به مادرش و گفت مادر جان از بابای خدا بیا مرزم چیز دیگه باقی نمونده؟ مادر فکری کرد و رفت یک کلاه سیاه آورد و به پسرش داد پسر هم کلاه رو بی اختیار رو سرش گذاشت اما یه دفعه قیب شد بله خاصیت این کلاه این بود که هر کسی اونو رو سرش میذاشت از دید همه پنهان میشد از فردای اون روز پسر کلاه رو روسرش سرش و توی کوچه و بازار میگشت اما کسی اونو نمیدید. بله تصمیم گرفت بره به قصر پادشاه. خلاصه پسر کلاه بسر و از دیده ها پنهان وارد قصر پادشاه شد. اتفاقا موقع نهار بود و اهل قصر در حال خوردن نهار بودن. پسر سر سفره پادشاه نشست و شروع کرد به خوردن غذاهایی که روی سفره چیده شده بود. دختر پادشاه اولین کسی بود که متوجه این قضیه شد با تعجب از خودش پرسید یعنی شد. چرا؟ این غذاهایی توی بوشخاب هر لحظه کم و کمتر میشه نمیفهمم و بعد با صدایی بلند گفت هرکی هستی تو رو به خدایی که میپرستی قسم میدم که خودتو نشون بدی جنی پری یا آدمیزادی زادی تو رو خدا خودتو نشون بده پسر تا این حرف رو شنید فورا کلاه رو از سر بردشت و آشکار شد پادشاه که از تجب چشاش گرد شده بود با اشاره از دخترش خواست تا راز کلاه رو از جوان جویا بشه و دختر هم با زیرکی تمام دست به حیله زد و جریان کلاه رو پرسید پسر جوان هم با سادگی تمام همه چیز رو تعریف کرد دختر رو کرد به جوان و گفت دلم میخواد از نستیک کلاه تو تماشا کنم اینجوری بیشتر حرفای تو باورم میشه و پسر جوون بدون اینکه فکر فکری کنه کلاه رو به دختر داد و دختر هم بلافاصله فاصله کلاه رو سرش گذاشت و از نظرها پنهون شد پسر جوون هم دست از پا دراستر نومیدانه به خونه برگشت جوون با ناراحتی تمام ماجرا رو برای مادرش تعریف کرد مادرش گفت قصه نخور پسر جون از بابای خدا بیا مرزد یه شیپور باقی مونده شاید بتونی با اون کاری انجام بدی و به درد بخوره. و بعد پا شد و رفت و شیپور رو آورد و به پسرش داد جوون هم شیپور رو گرفت و گفت مادر جان من فردا صبح به سفری دور و دراز میرم و این شیپور رو هم با خودم میبرم فردا صبح پسر با مادرش خداحافظی کرد و رفت. بین راه بود که وسوسه شد شیپور رو امتحان کنه. توی شیپور دمید و یهو اطرافش پر از سربازان مسلح شد. پسر دوباره توی شیپور دمید و این بار سربازها از نگاهش پنهون شده. پسر با خوشحالی گفت، عجب شیپور جالبیه، الان دیگه وقت انتقام از پادشاه و دخترشه. راهش رو به طرف شهر کچ کرد کنار شهر توی شیپور دمید صفهای طویل از سربازان پدیدار شدند از اون طرف به پادشاه خبر دادند که چه نشستی که لشکری عظیم شهر رو محاصره کرده و به طرف قصر در حرکته پادشاه سراسیمه لشکرش رو آماده کرد ولی دید کاری از دستش ساخته نیست و در برابر لشکریان پسر جوان کاری نمیتونه بکنه در همین هنگام متوجه دخترش شد و این بار هم دختر پادشاه با حیله و ترفند نزد پسر جوان اومد و ماجرا رو پرسوجو کرد جوان هم قصه شیپور رو تعریف کرد دختر گفت باور نمیکنم. مگر اینکه خودم این شیپور رو امتحان کنم و این بار هم پسر با ساده دلی شیپور رو به دست دختر داد. دختر بلافاصله در شیپور دمید و در یک چشمم زدن تمام سرپوزا ناپدید شدند. دختر هم شیپور رو برداشت و فرار کرد. پسر جوون نومید و پشیمون برافروخت. اون همه چیزش رو از دست داده بود. کیسه، کلاه و شیپور پسر جوون خسته و نالان رفت و رفت تا اینکه به درختی رسید درخت درخت انگور بزرگی بود پسر که خیلی خسته بود زیر ساگی درخت انگور دراز کشید و به فکر فرو رفت در این موقع کلاقی رو دید که بالای درخت نشسته و انگور میخوره یهو دونی انگوری از اون بالا به زمین افتاد پسر دونه انگور رو برداشت و اونو به دهنش گذاشت اما هنوز دونه انگور از گلوش پایین نرفته بود که تمام بدنش شروع کرد به خاریدن بعد از دست و پاهاش ریشههایی بیرون زد پسر با تعجب از خودش پرسید یعنی چی این چه دردیه که به اون مبتلا شدم حالا چیکار کنم پسر بیچاره داشت از درد خارش بدن به خودش میپیچید که کلاغ رو دید از روی درخت انگور پرواز کرد و رفت روی درخت گردوی که کمی دورتر بر نشست و شروع کرد به خوردن گردو گردویم از نوک کلاغ به زمین افتاد جوان خودش رو به زیر درخت گردو رسند گردو رو شکست و مغزون رو خورد و دید خارش بدنش تموم شد و دست و صورتش به حالت اول در اومد جوان خوشحال شد بعد فکری به ذهنش خطور کرد بلند شد و جعبه انگور و جعبه گردو آماده کرد و با لباس مبدل به طرف غصر پادشاه برار افتاد پسر جوون به در غصر پادشاه که رسید به نگهبانان غصر گفت من برای پادشاه جعبه انگور آوردم که میخوام اونو به پادشاه تقدیم کنم نگهبان ها با تعجب پرسیدن انگور؟ بعد پوست زمان گفتن <تصفح> مگه پادشاه انگور نخورده است جوون؟ پسر جوون گفت نه این جعبه انگور خاصیت ویجه ای داره نگهبان ها پرسیدن چه خاصیتی؟ پسر جوان گفت پادشاه به سلامت باد هر که از این انگور بخوره عمر جاودان پیدا میکنه نگهبانها تا این حرف رو شنیدن فورا به اطلاع پادشاه رسوندن که جوانی جعبگ انگوری آورده که با خوردن اون پادشاه عمر جاویدان پیدا میکنه پادشاه با خوشالی پسر جوان رو به حضور پذیرفت. جوان هم خوشه انگور از جعبه بیرون آورد و به پادشاه داد. انگور درشت بود و زیبا. بیشک هر کس اونو میدید وسوسه میشد و اونو میخورد. پادشاه هم فوراً خوشه انگور رو خورد و به اطرافیانش هم تعارف کرد که از انگور بخورن. خلاصه همه اهل قصر بعد از خوردن انگورها بدنشون شروع کرد به خارش و از دستشون هم ریشههایی بیرون زد. پادشا دیگه فکر اینجاشو نکرده بود. اونو اطرافیانش از درد خارش به خودشون می پیچیدن و به پسر جوان پناه می برند. و از اون چاره می خواستن. پسر جوان به پادشا گفت، من همه شما رو نجات میدم. فقط شرط داره. پادشاه در حالی که از شدت خارش کلافه شده بود به تندی گفت آه, آه، چه شرطی هرچه باشه قبول میکنم. پسر جوان گفت من همون جوونم که قبلا به خاستگاری دخترتون اومده بودم. حالا همه اون چه از من گرفته بودی پس بده. پادشاه هم که دیگه داشت از شدت خارش بدنش دیوونه میشد پذیرفت و دستور داد کیسه کلاه و شیپور رو به جوان برگردونه. و قول داد چند روز دیگه هم دخترش رو به عقد پسر جوون در بیاره جوون هم مغز گردوها رو به پادشاه و اطرافیانش داد تا بخورن و از دست خارش بدنشون رهایی پیدا کنه بله اونها گردوها رو خوردن و خوب خوب شدن افسانه ای ایرانی ارسیه پدری یا پسر فقیر و دختر پادشاه رو براتون نقل کردم این افسانه رو از کتاب قصه های مردم فارس گردآوری ابوالقاسم فقیری براتون انتخاب کرده بودیم که امیدواریم از شنیدن این داستان و افسانه لذت برده باشید افسانه ها در طول زندگی مردم دستخوش تغییر بودند و اونچه که امروز نقل میشه مثل دیروز نیست افسانهها ها مثل پرندگانی که یک جا موندن رو صلاح نمیدونن دائم در حال حرکتن و از منطقهی به منطقهی دیگه کوچ میکنن هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح بور ویراستار الهام اشجب اجرا مهران دوستی صدابردار اکبر نیکاین تیگه کننده زهرا عبدالله زاگه موسیقی. تا افسانهای دیگر بدرود